زیبایی در بستر آرامش حضور تو میشکود انگاهی برای مدتی کوتاه آنچرا که شما هماکنون شهر دادید تجربه میکنم یعنی زمانی که تنها هستم و طبیعت مرا احاطه کرده است آری این لحظههای کوتاه قیبت ذهن و حضور کامل تو همچون برق اشراقند گرچه این لحظههای کوتاه موجب دگرگونی بنیادی پایدار نمیشوند اما آنها را قدر بدان زیرا تعم روشن شدگی را به تو میچشانند این حالت ممکن است بارها برایت اتفاق افتاده باشد که آنها را بشناسی و یا اهمیتشان را بدانی درک زیبایی شکوه و قداست طبیعت مستلزم حضور است آیا تا کنون به آسمان پرستاره و بیمنتهای شب نگاه کرده ای؟ آیا با دیدن آن همه شکوه و جلال و آرامش حیرت نکرده ای؟ آیا تا کنون حقیقتن به صدای جوی بار در دل کوه گوش سپرده ای؟ یا به صدای آواز خوش پرنده در یک قروب تابستانی آرام؟ هوشیاری نسبت به این چیزها مستلزم خاموشی ذهن است باید برای یک لحظه پول بار شخصی دردغه گذشته و آینده و همه دانسته های خود را زمین بگذاری در غیر این صورت نگاه می کنی اما نمی بینی. گوش می سپاری اما نمی شنبی. حضور کامل تو لازم است. ورای زیبایی صورتهای بیرونی حقیقت دیگری هم هست. چیزی که نمی توان نامی بر آن نهاد. چیزی وصف ناپذیر. حقیقتی قدسی که در اعماق وجود توست هر جا که زیبایی هست این حقیقت درونی میدرخشد این حقیقت هنگامی خود را به تو نشان میدهد که حاضر باشی آیا این حقیقت بینام و بینشان و حضور تو یکی نیستند آیا این حقیقت میتواند حضور تو باشد و احساس شود به دل این حقیقت شیرجه بزن خودت آن را کشف کن وقتی آن لحظه های حضور را درک می‌کردی نمی‌دانستی که موقتاً در ساحت بی ذهنی به سر می‌بری زیرا شکاف بین درک این لحظه ها و جریان فکر بسیار کوتاه است ممکن است لحظه‌های اشراق تو چند ثانیه بیشتر طول نکشیده باشد اما این اتفاق افتاده است وگرنه نمیتوانستی زیبایی را درک کنیم ذهن از فهم زیبایی و آفریدن آن ناتوان است وقتی برای چند ثانیه با تمام وجود خود حضور پیدا کرده ای آن زیبایی و قداست را تجربه کرده ای. به دلیل کوچکی شکاف یاد شده و نیز به دلیل ناهشیاری تو احتمالا ناتوانستی تفاوت اساسی بین تجربه بلاواسطه زیبایی و تفسیر آن را دریابی. شکاف زمان چنان کوچک بوده است که آن دو را یکی پنداشته ای. با وجود این حقیقت آن است که وقتی فکر ظاهر شده است، تجربه نیز به خاطری تبدیل شده است. هرچه فاصله بین زمان و تجربه بیشتر شود، تجربه های نیز ژرفتر می شود. یعنی، آگاهتر و هوشیارتر میشوی بسیاری از آدمها چنان زندانی ذهن خویشند که برای آنها زیبایی طبیعت اصلا وجود ندارد ممکن است بگویند چه گل قشنگی اما این گفته آنها چیزی نیست مگر برچسب زدنی مکانیکی و ذهنی زیرا آنها سکون و آرامش ندارند حضور ندارند گل را حقیقتا نمیبینند ذات گل را احساس نمی کنند قداست گل را احساس نمی کنند همانطور که خود را نمی شناسند ذات خود را احساس نمی کنند قداست خود را احساس نمی کنند فرهنگ ما زیر سلطه ذهن است به همین دلیل بسیاری از آثار هنر مدرن معماری، موسیقی و ادبیات فاقد زیبایی و عمقند. البته استثناهایی هم وجود دارد دلیل این موضوع آن است که آفرینندگان این آثار حتی برای یک لحظه نیز نتوانستند خود را از اسارت ذهن خیش برهانند. به همین دلیل نتوانستند به جایی در درون خیش برسند که سرچشمی همه آفرینش ها و خلاقیت هاست. اگر ذهن را به حال خود رها کنی، چیزهایی زشت و بدقواره می آفریند. و نه تنها در گالوری های هنری به فضای شهری پیرامون خود نگاه کن ببین آدم های اسیر زه چگونه در کوچه و خیابان و خانههای زشت زندانی شدند تا کنون هیچ تمدنی این همه زشتی به بار نیاورده است تجربه آگاهی نا حضور و هستی یکی هنگامی که تو نسبت به هستی آگاه میشوی در واقع این هستی است که از خود آگاهی پیدا کرده است. هنگامی که هستی نسبت به خود آگاه می شود حضور تحقق می آبد. از آنجا که هستی آگاهی و حیات مترادفند می توانیم بگوییم که حضور همان آگاهی است که از خود آگاه می شود. یا حیات است که به خدا آگاهی می رسد. اما خود را گرفتار کلمات نکن و سعی نکن این نکته را با ذهن خیش بفهمی. آنچه که گفتید نفهمیدم. اما به نظر می رسد که گفتی شما متضمن این نکته است که هستی این واقعیت متعالی در مسیر کمال است. آیا کاملتر شدن برای هستی قابل تصور است؟ آری، اما فقط از نظرگاه محدود جهان که ظهور و جلوه است. در کتاب مقدس از قول خداوند آمده است من آلفا هستم، من اومگا هستم، منم آن ذات زنده. در ساحت بیزمان خداوند که ساحت تونیز هست، آغاز و پایان آلفا و اومگا یکی و ذات همه اشیا، که بودند و هستند و خواهند بود به طور جاودانه در ذات تجلی نایافته یگانه حضوری کامل و تمام دارد این ساحت به تعبیر ابن عربی آرف مسلمان مسلمان است ورای طور عقل یعنی با ذهن و عقل نمی آن را فهمید در جهان ما که جهان کسرت هاست کمال بی زمان نیز مفهومی تصورناشده است در جهان کسرتها حتی آگاهی نیز که نور ساعت از سرچشمه جاودانگی است دست خوش کمال و نقصان می‌شود اما این کمال و نقصان به دلیل محدودیت فهم ماست ورای عالم کسرتها کمال و نقصان معنایی ندارد با وجود این بگذار کمی درباره تکامل آگاهی در این جهان سخن بگویم هر آنچه هست از هستی برخوردار است از ذات الوهی برخوردار است و به اندازهٔ وسع خود از آگاهی برخوردار است حتی سنگها نیز آگاهی دارند اگر چنین نبود نمیتوانستند دوام بیاورند و اتمهای آنها از هم میپاشید همه چیز زنده است خورشید، زمین، سیاره‌ها، حیوانات، انسان‌ها، همه اینها مراتب ظهور آگاهی‌اند. خداست که خود را در صورت‌های گوناگون پدیدار می‌سازد. وقتی آگاهی بیشکل و بیزمان متعین می‌شود، یعنی خود را در صورت‌ها و مظاهر عالم پدیدار می‌کند، جهان پدیدار می‌شود. به میلیون‌ها صورت گوناگون حیات بر روی کره زمین نگاه کن در دریا در خشکی در هوا هر یک از این میلیون‌ها صورت حیات خود را در میلیون‌ها صورت دیگر تکثیر می‌کند برای چه آیا کسی یا چیزی دارد با صورتها بازی می‌کند این پرسشی بود که روشنان باستانی هند طرح کردند آنها جهان را لیلا نامیدند بازی بزرگ هستی البته در این بازی صورتهای فردی زندگی از اهمیت زیادی برخوردار نیستند. در دریا بیشتر صورت حیات پس از آن که به دنیا میآیند دقایقی بیش نمی پایایند و از بین میروند. صورت انسانی نیز خیلی زود به خاک تبدیل می شود و وقتی میرود چنان است که گویی هرگز نبوده است. آیا این حقیقت قنبار یا ظالمانه است؟ اگر در کسرتها وحدتی نبینی چنین است. اگر برای هر صورت ذاتی جدا و مستقل فرض کنی و فراموش کنی که هر صورتی مظهر یا محل ظهور ذات الهی است چنین می شود. اما تو از درک این وحدت عاجز خواهی بود مگر آنکه ابتدا ذات الهی خیش را به عنوان آگاهی ناب شناخته باشی اگر در آکواریوم تو یک ماهی کوچولو به دنیا بیاید و تو او را مثلا مایکل صدا کنی برای شناسنامهی صادر کنی در باری شجر نامش با او حرف بزنی و دو دقیقه بعد او ناگهان توسط ماهی بزرگتری بلعیده شود تو این حادثه را قنبار تلقی میکنی اما این حادثه زمانی قمبار تلقی می شود که تو برای آن ماهی کچلو خودی مستقل و جدا از دیگران قائل شده باشی چون این خودی وجود ندارد تو یک جزء را از یک کل کامل بیرون کشیده ای و برای آن هویتی جدا قائل شدی آگاهی ماسک صورتها را به چهره می زند تا آنکه آنها به چنان قابلیتی می رسند که عین آگاهی میشوند اما آگاهی عین این, این صورت نیست انسان امروز خود را عین این صورت فیزیکی و روانی فرض کرده است و از فنای این صورت میترسد این ذهن نفسانی است که میترسد و همین جاست که خطاهای بسیار زاده می شود چون این بنظر می آید که خطایی بر قلم سون رفته است اما چنین نیست هرچه هست بخشی از لیلاست. آن بازی بزرگ و باشگو. سرانجام در رنج های ناشی از کسرت گرایی و جدا پنداری باعث می شود تا آگاهی خود را از صورتها جدا کند و از خواب صورتها بیدار شود. بدین سان آگاهی خداگاهی خود را پیدا می کند اما در سطحی بسیار جرفتر از جایی که آن را گم کرده بود به تعبیر رومی نهی که از نیستان جدا شده است سرانجام به اصل خیش باز می گردد. اما این نیستان همان نیستان گم شده نیست بلکه مرتبه است ژرفتر و متعالیتر مسیح این روند را در حکایتی بیان کرده است حکایت فرزند گم شده که خانه پدری را ترک می گوید همه دارایی هایش را از دست می دهد توهی دست می شود و سرانجام مجبور می شود به خانه برگردد وقتی او به خانه برمیگردد پدر بیشتر از پیش به او مهر میورزد. این فرزند به ظاهر همان فرزند است اما همان فرزند نیست بعدی جرف به ابعاد او اضافه شده است این حکایت درباره سفر گنج پنهان است که می رود و از خلال تعینات و صورتها و شرها می و گنجی شناخته و آشکار می شود. بدین سان کمال ناخداگاه کمال خداگاه می شود. آیا تا اینجا اهمیت ژرفتر و مهمتر حضور پیدا کردن عنوان ناظر ذهن را در هرگاه که ذهن را مورد نظارت و مشاهده قرار می‌دهی که به آن محاسبه نفس نیز می‌گویند در واقع آگاهی را از بند صورتهای ذهنی میرهانی. معنای مشاهده ذهن همین است بدین سان مشاهدگر، یعنی آگاهی ناب رها از صورت‌ها نیرومندتر می‌شود و ذهن ضعیف‌تر وقتی درباره مشاهده ذهن سخن میگوییم در واقع از رویدادی سخن میگوییم که حقیقتاً دارای اهمیتی کیهانی است توسط توس که آگاهی از خواب یکی انگاری خود با صورتها میرهد و خود را از صورتها جدا میکند وقتی آگاهی خود را از دام یکی انگاری با صورتهای فیزیکی و ذهنی رها میکند چیزی میشود که میتوانیم آن را آگاهی روشن شده ناب و یا حضور بنامیم عدهای به این آگاهی رسیدند و انتظار می‌رود ادی بیشتری نیز به آن دست یابند گرچه برای تحقق این موضوع هیچ تضمینی وجود ندارد بیشتر آدمها هنوز در چنگ نفسانیت خیش گرفتارند همزات با ذهن خیش و تحت سلطه آنند اگر آنها به موقع خود را از چنگ ذهن رها نکنند توسط ذهن نابود خواهند شد آنها دچار سردرگمی روزافزون تضاد درونی خشونت بیماری افسردگی و دیوانگی خواهند شد ذهن نفسانی به یک کشتی در حال غرق شدن میماند اگر از ذهن بیرون نپری با ذهن فرو خواهی رفت نفسانیت جمعی خطرناکتر و ویرانگرتر از نفسانیت فردی است اگر آگاهی بشری تحولی بنیادی پیدا نکند چه بر سر این سیاره خواهد آمد؟ اغلب آدمها برای آنکه دمی از شر ذهن خلاص شوند ترجیح می دهند، ترقی معکوس کنند یعنی به سطحی پایین از سطح فکر برگردند همه شب هنگام خواب این کار را می کنند. اما بعضی ها به سکس، الکل و مواد مخدر دیگر رجوع می کنند تا بدین سان فعالیت های افراتی ذهن را سرکوب کنند بدون مسکن مسکنها، داروهای ضد افسردگی و مواد مخدر گوناگون دیوانگی و حماقت ذهن بشر بیش از اینها فاش می شد بقیده من، اگر این مواد را از آدم ها بگیرند نیمی از مردم کره زمین به تهدیدی جدی برای خود و دیگران تبدیل میشوند. اما این مواد هرگز نمی توانند تو را از بااطلاق ذهن بیرون بکشند. نقش این مواد آن است که مانع شکستن الگوهای کهنی ذهنی تو می شوند و بدینسان بیداری و آگاهی تو را به تعویق می اندازند. شاید این مواد تسکینی باشند برای شکنجه‌های ذهن اما مانع رشد حضور آگاهانه تو برای فراتر رفتن از ذهن و تحقق آزادی حقیقی تو میشوند. رجعت به مرتبهی فروتر از مرتبه ذهن که مرتبه پیش از تفکر و مرتبه حیوانات و گیاهان است تو را از اسارت ذهن نمی رهاند عقب‌گرد ممکن نیست اگر قرار است نسل بشر باقی بماند باید انسان به مرتبه بالاتر از ذهن صعود کند آگاهی در میلیون ها صورت در جهان بست بنابر بنابراین اگر همت نکنی و صعود نکنی برای جهان بیکرانه اهمیتی ندارد اگر تو بمانی آگاهی خود را در صورتهای دیگر جلوگر خواهد ساخت اما همین که من اینجا سخن میگویم و تو به آن گوش می سپاری و یا آنها را میخوانی، حاکی از آن است که آگاهی تازه برای خود روی این سیاره جایی باز کرده است این آموزه ها شخصی نیست من چیزی به تو یاد نمی دهم. تو عین آگاهی هستی و به خود گوش سپرده ای. در اینجا من و تو هر دو چیزی را میسازیم به نام آموزه ای نو در هر حال کلمات فی نفس ارزشی ندارند، آنها خود حقیقت نیستند، فقط به حقیقت اشاره می کند. من درباره حضور سخم می گویم و در هین صحبتهای من ممکن است تو بتوانی در این ساحت به من ملحق شوی. گرچه هر کلمه ای که من استفاده می کنم تاریخی دارد و از گذشتگان وام گرفتم، اما این کلمات حاوی انرژی نیرومند حضورند، و چیزی فراتر از معنای معمولی کلمات را به تو منتقل می‌کنند سکوت ظرفیت حضور بیشتری در خود دارد بنابراین وقتی این کتاب را می‌خوانی متوجه سکوت نهفته در دل کلمات باش نسبت به ها آگاه باش گوش سپردن به سکوت هر کجا که باشی راهی است آسان و مستقیم برای حضور پیدا کردن حتی اگر پیرامون تو سر و صدا باشد، همواره سکوتی زیر صداها و یا بین صداها وجود دارد. گوش سپردن به سکوت، سکونی را در درون تو به وجود می آورد. تنها سکون درون توست که می تواند سکوت بیرونی را بشنود. سکون چیزی جز حضور نیست، یعنی آگاهی رهیده از صورتهای ذهنی،